باسرين حوري خلينا نكتب قران بنيو حكمتك انو سيندا كتابي مجاور جنور نوسيني حجر الكرياني شو بدنا علي گومر کردنی دلیر سلین عزیز شوتن شد خوشخالین لبش یانزیمی خوی نویک تیبی چشتی جوری هجاری مکریانی حتی نوالاتن فرمون لگلمان بند حجر مکرانی بر دوام د بیل سرګرانه وی سرګوزشتي ژياني خو يو هلو با سدان ک سبرز با پیوندي حزب با حزبوا با سي له دکد من تا اوس له باري الوسبوني ولا توا هر وندم د زاني ک پروژه تیاریک با سرګوند کمند فريو کاغذي لیبر بونه و بون روسان بلاويان کړد بونه کا خالقی ایران خاطر جنبن. یه مال لجورگانی هتلری رزگارمان کردن. دولتی شان شاهی ایران که هواли نازی بون لبریک هل و شعو بو با خوشی خوشی من که خواه شکر لچن امنیا و شل تاغی معمور رزگار بون. سربنی قسمان صلوات لدیداری عروس و تیار رشبو. هرکز لشار و دهات دنجو باسمن دپرسیم. هریک جوری که دگر روا. یګهوتی کاکا لمرونه چکچوا چونکه یو املی بو په قالک به مشتری کې دغو پهلویج ګوی وای نه خوردو کی خاص جیلک مان هبو تترسا براتک نه دینه له شرحه اوتی درویا دولت هر وک خو یو کاربدستاني امنیم دیون زور بکيفن دلمان سردو بو شبيك دمیواني نناسی او ماتن بلام چون میو انک روتو تی 12 قسم هند روتو پریشان نه دیوه اوتیان یمر سربازي لوړميه بوين مدفنگ و د هاتينه شکاکان امان وقت ستانو هزاران سرباز او تر روت کړدو او جلانيان دا وني هم د دانی داني ته گيش تین کخه راستينه و تو تاو کډه من خوشی او شادي براستی راستي رزګربون لو جهنمي پهلوي بو خلچي مکريني نیل دا بو هیڅ خوشي کې نه د گيش هر قبری کي تازه ان بي او تن جاوری لیدانو برتیل ورگرتن کارب کا. لبیر ما شویکی مانگشو درنگانی که لمال درکوتم کتوزیک بچمه دشت. روانیم کلاکی که برحیوانی مزگوتکه خنخنی ده. پیره مردی که بو خریق بوده مرد. چون که خادیم خبر کرده. از پیه کلاکی نناسی بردو لپنا نزگترین گوند فرایده که نوک امنیه بزننو مالویران منکن. هر او شوا کلاګ دېبدې دي رویبو تاګیب ودروشان کمالک چی کابریلی ابو معلوم بو لا کلب رزا خان و بن خوشی اوا گورب گور کراوه خو نه خوسته دولت یان لا مزرې گوندېک بسختب مردایا یتر وا وی لا بو کس د بلاو ولا سوچی رش چالان توند کران اگر تنی او درده کتاغه گوندېک لمکریان د سپیاوی دولتی رزا خانی و دیویا کوب کراتوه کتابی که گوری دوست، بیست منو و کشون لشکری ایران کسر تپه لچکی آلمان داخن کابو، چون به بیش شرکردن لبریک بلاو بود، سری بیکلاو معطوا. سرباز تفنگان داو بنانی کول لکل خوان کرد و تو، و پاری رازیلی دولة لبریک چو. پس کوکردن خرمن خلاو مشارو دیتم هوای سیاسی خوش، او سابو کچو استوان خواند و دوای بیان گرام و بال چبو چون او حزب پیکوان راوا. نابجه نازانم، برل یارانوی امرو داو درباری بحثی کردو، ازادی لکردستانی ارانده، وکبیستو ما یا خواندو متوا بجیرموه. تاریخ پیمندلی که خان احمد خان لحسناباتی سنا تانجیل سرناو پین سالان پادشایتی سناو سابلاغ ولاتی بردستی استای عراقی تاموسل بدستو بوا. لسالی هزارو دوست و نوششده، برانبری هزارو شش ست و هفته هشتی ملادی دا، شیخ عبیدالله نهری دعوی سربخوی کردستانی کردو و تامیندو و بناویشی گردو و لسالی 1906 و حوتی زینی دا شیخ بابای غوصابت بابریکاری حمحسین خان و سیفدین خانی سقز و حمخانی بانا هاتو چوی روسانی کردو و که بو آزادی کردستان یریده بدن لا جنگی شر یک نی گوردا افسر بنای مصطفی پاشای نمرود به برگی گورا و هاتوه به کردستان مکری دا گراو گر دا وای کردو که کورد ازادی خو ازبن دلن شرک لسابلغ چوتقاو خانه حکایت خوان جو لباس رستمو دی 25 پیوا ل الفاتحه خلق فاتحان خندوا نمرود دشت الهناو گوتویا خیریو فاتحیا به روحانتی رستمو دی 25 برام او مردون ایوک زندون فکر یک با حالی خوتن بکنه و هرچند او باسورو دوانه لبیر خلقچونه و کمتر و بیر هاتونه و بلام رنگ شوی نواری کن لبن خوالمشی او چند سالانه دا ما بیو گرمایی بیگ جاری نفوتا بی لپاش قومانی شهری ور و هرتنی روز با ملبندی مکوریان افسرک للاین کومالی هیوای کردستانی بردستی عراقه و هاتوتا و سابلاو دیوکسک پیدا که جویه لاموشگاری دکا. پیدالن زبیحی دملو مثلا نه ورده زبیحی حسینی پدراسین چن کس کیش سازدن کجو لو افسره کناوی میر حاجه بگیرن 11 کس لا باغی 33 صبلاغ دګل میر حاج کو دبنه نو نسق او حزبی جا کاف ددم زینن سننامه کیدن مستونه وا حزبی وا به توځک دسکاریه وا دکنه پروګرامي ژیانوی کورستان حسین فروهر زبیهی توحید ملا نجمه، امامی، محمد نانوا قادری مدرسی، محمد یاهو، شاپسندی، محمد سلیمی، قاسم قادری، خاله ملای داودی، یازده کسی به ناغده نر بون. جا که زبیهی منی بردسویندن بمناو بوین بیست اندام. حسین اندام جماریکو زبیحی جماردو بون حسین سروکی کوملای جیانوی کردوستان بو. تازه ببوما جیانوی کردوستان، و عمل بیار سهامین کوونه من بو. حسین فروهرویی من پیش نیاد دکم حجار درکن چونکه هیچ کاری کی لدست نیا. رنگ مزرد حال داره. تفل زرند دوشک بو بنویزه که وتم نه تو خواهر مکن کارم پیب سپیرن آخر من معلوم لذتی او انگوش تا است لذتی کارتانیا فرمیس کم هت نخوار. بزیان پیمدهات ویان قیناک راست زور دست استانی بالام هر لکمالکا دنبی نه. ل درجهای تمنم داک استال پلی حاوت مولش شستوسی سالم جیم زور حزب لنزیک و دیتون باسی رفته و رابر دو زوریانم خندوتو و زور چطور نه یک کاملا گوگ اندامانی دامانی جیانوی کردستان آوا فیداکارو دالگرمو یک ترخوشه ویزبوبن درباره اصحابی پیغمبر زور باسی یک دلیو فیداکاری هست وقتا بلیم ان دامانی آو حزبشته خود زینه ول فرمان درو خو خوازی فیل بازی بجارک لحوت کیوان اواب بو. مال دنیا هر بوی مایدل خوشی بو که کاملا پی لازم بی. جاریک لطرقه و هات مشار. بیست منم پاشکوت کرده بو که جلک بومندالان بکرمو نخوازه کدیتم خوشکم کلوجه پی نکردوا. زوری دلتان کرده بوم. هرگیشت مشار ایواره بو. دچو موا قاوخانه دمچم که حوالان ببینم. لسر پردی دیوینی چوم توشی یکن یک هاتم. او فلانی توپولت میا؟ هند یک پولمان پی لازمه دبیه کوئی که نوا دازبجه بیست منکم دایو هر لوه گرامو و لشار درکوتم و مو مال چونکه مخارج مخارجی شوکم بو خوام نگیره و که حتمو خوشکم پرسی زلکت کری و تم بدخوا بطلی قماری سیخال و بو مو همو پولکم دارن گوتي دزانم ند دارندوه بلام خمبخو ایم هرچونک بیر راید بویرین هرچن زوازو و ببینو انده من لسط و دوست ینتی پرنده بو، بلام همون روتو ندار بوینو، پول من بو خلنه دسوره که پره براغیاندنی حزبی بدهن. دمانویست گووارک درکن بناوی نشتی من، حساب من بو کرده بو، دری ندههنه. برادرک من چوبو بناوی خوی سط و پنجات منی لحاجه قرز کرده بو که بمن گیگ ځبیحې کدبو به کاري کاری کړاب گا او کسش پې نه زانی چوبو د گل خليفهګری هرمنیان له توريز رکوتبو کله چاپخانی کله سابو چپکن منگ تیور سورا او گوور دوکوت حاجی قرض خو دویو دبی به مولتی لبخوازن آخری حاجی دېگو او قرضه او قرض دیناچه بابا هر پېمبلې بوچې له قرض کړم نه مې بندنه وا اخري درکوتو زورزو بلاو کرایو دسمایې جماری دوه مې قازنج نبسای و زوری دنگ دایوه تنانت روجنامکانی جورو لاوی ایرانیش کوتبونه باز کردنی لبیر مجاریک بیر من لو دکردوه که چابخانه دستی بچوک بکرینو و بیخینا چند بشی که بچوکو هرکس بپی توانا بشکانی بکره که که رحمان که اوصاب و اندام و دوله من بو و من هموی دکرم باور که فریمسک من فرمیسک من دا چابگره که لو خوشیه نا همید بوینو لکرینی کله خوشی کوم له خوم کړ د وشاعر جګل شعر کوردیاتی شعر تریشم د نوشین ججن پیروزه بو احمد اغا قال توغب گلستان سعدی مرد جراي سربالي قالتا شعر حافظم به بری قال توغب د ورد جلا اندازې کې زرم لو شعر و سراوانا رښستبو که استا هیڅ شعر مې ماونو لبیر ما برل گوواری نشتی من، تنیا دو بیتی من لسرک غزیک چپ کرا بو. با یکم جر کدیتم اوندم قیف پی بو بشام ده گوت هتی آی کچندم شایی بخون بو. استاده به اورکدم ابو دووا گفتم لسرتای چون حجره درسی گلستان و دگل زبیحيبو معاشنه جا چونکه بابی او بابم هر دو مرید شیخی برهان بونو نیوانن خوشبو یمش پیکوا هوگرمن گرتبو هرچند اویان برده مدرسه دولتیو منفقلی مسگود بون بل ام لکاتی برهلدای دا پیکوا دگراین هر وا تو راحتین مل لکون اکتبان نو نوشتو جادو كونکتیو مان زوری سرنج چون مس بکین زیر چون سکالیدن، چون وابکین به بخزینه و ببینین. لبزمی سکالیدن ده دوشتی سرم دیتا بیر. قلبی که سکالیدن من لکته بکوش کلکیشاو لای پیرمیرده که تنکسا سکبو من دروز که. کا. کابره پرسی بوچی تانه وتمان بوخو من گلتی پیدکین. وطی رو رجیان ده زنم بوچی تانه ورن مامی خودتن بکنه شریک. پنجا سال حولی لدود ددم بوطن دروز دکم و خ هر ورده ورده گرم تر د دهات کوتب و په لو لرفو عرق دواتر پیوتن مامتان به قربانتان ممکن شریک هر هنده من بوکرا راکه نو مز لکارکه بینین جره کی تر لکته با پرپوتک دا ناوی دري و بوته و غلبوته مان بر چوحات کابوس کل و زرنگر خیانه پیر جولکی کی زرنگری باری چکن مان له کی تاریک دا پیدا کرد هر ګټ دستی کرد کې به پارانه ووتې یو مشاقي من خدمت کارم چی تاند یو بوتاند کم بلاند بم کنه شریک هاي به کل چی تا خوښته نه رسره او نه پچراوه شقيده زور زول چنګ اویش حالاتینو تازه نمان منوي را بسيب با خو من بد و هرچونګ بو قلبی کي وګ برګه شمچه من ليده او پر من کړ لا قرې خوله مې شو دو قرانې کي زیو منته دا جکردوه قلای من لسر مقالي پولو بفو که همو شویلکمان گو رابو توانده و بسرمنده کرد. خواه بسر تی نهینه. قلایی بدو قرانی و نوساو استاو استاش برینده و لباتی قازانج زررمند کرد. بگورهی بیرم لوده کرده و با ما مندالو دالو بوین. آخر او دو پیره مرده بوده بیهنده کردن که لبر دو مندالو که بپارینه و اوشته خویه نیزنن فری اوانی کن. دعای کم دست کود نوسرابو، څه یګجږځیک لسر خپل کېشه چل جره صورت یا ایها المزمل لبروزور بر رواني بخوینه لم ما بین هر جاره خندنی سوردا ام دو عایه لبر بخوینه جن دوک دی انی بترسینن کې وک ب مو یک حل واسراو لسلسره را دګرن خو عندك بترسی هر یک حرف لې غلط به واوی لا د مریګونه خود لسر خپل اگر لو از مون سر کوتیو چل جره ک چندوق یک دبیتنو کرد. هر چی بلی پیکیدینت. ای که چنچتی چاقا. شرط پیدالم کجی قاقانی چینی این ببینه. خوزیر و زیو هرباسی نکره. نمی‌وست ز بهیب کم شریک. پیم نگود. چندروجان صورتو دوام و دو اوله برکد. شوالپاش معلن استن بذی و چوم و تقه کی لای درگمان که جوری معلمان بو. برو ح سیرم لا بلد جغزم کی برو قبلہ ملمنا لو رتور خوندن لبیزار تیپریو دنجی پیات چاوم ک چوقنده بو حلمنه یاوتم باجندو ک بین منت یان نبی من نا ترسم تقی پینزی ک بو دنجی کتانې دهات جمله ناسک بو نخير بخو نو راموستا لپر زور با قوغوچانیکم و پشت ملکوتو جنوی بابمی بدوده وتی ملعون او خریکی سحری هر لپنژرا و خمها یشتو حله، اما حله، باب من درجح او شو بانجک کرد. و توی جارکیتر ند به هزاران گریان و پرانوا راجیرامو ایتر وازم لجن کچی قاقانی چینیش هنر. کرتی ببر ماو هر پرآش ریکم دادی توشته کی لنبابتی سحر و جدوانه تی دبو ل ماو بر راسته. برام خوا نکنن آونداب سجیتی نصیبویان کم پرسه. میشکی میشولو هیلکی میرولا تکلکو چاوتی پی بررژه جندو کده بینی که سال دخوینی پپو سیمانه دا بکلنه ایسکی کسر او دکیو ود میهیو بختوارده بی لخانقه حاجی عبدالله کری گوری شیخ برهان بپیری وکمنی مندال بیریده کرده برگری دابو اگر لسای نوشته و خزینه پیدا که بشن بدا راجنبو با پیدا کردنشتی لاقل بدور نمخاطه بگاره و توا ورزی کرده بوم. روژه گوتي، بچو پیستی لبرتاو سپی بوی که سالی مردم با پیداکه. اوی هنده باشم با بیانه دو ایلیدنوسم، دمالی کلبابی که رنگشینی بیخالی دکمو روژه جمعه بریده دم، لکوی نشتوه خزین ایتی دایه. وتم، هنده باشیه و تی تروزیا، وتم، قربان، اگر سهرکه با کیری کر لپشتی کی سالی بنوسی باشتره؟ ایتر خویلی تو را کردمو، لخزینش بیباش کرم که هر هروک من دملا باش ما. زبیحی دو با دو زمان یک من درست کرده بو، که من ندگیشت. رو جه که با زمان قصه من دکرد کابره جویلی بو. روی کرده چی دووتی، آخر بود چی آخر زمان نیا. او سکبابانه بزمان جولکان قصه دکن. دابلی لکشوی فیر بون. مانگی جوزردن بو در ونی جل بوکان بکند دستی پیکرد بو حزب ناردی چو مسابلا دجال مرزا قاسمی قادری و سبیحی کدابوی نسیکز وقتی آن بس بسن آدزای مرگوار دجال نورانی حزب هوای کردستانی ایران گفته گوپ کنو هر قراریک اول بدن اما پیر رازی. بسواری طومبیل برای ورم کوتی نری کلیووا فایتون هیو دمانبات مرگوار گیشتی نجندی بالانش شر وهرایک بو سکساعی خوین داناسی. زیر آقای هرکیو، دولت شریان بو، پرسی امنیاس و تابو، هشت کلاک درخشک رابون، هرواق کربون لورمیا و هالات بو ندهاتن. به پلترام بیل من بجیهش تو برای چیاره وین، چوی نگوندی کوهی، کمالا زیره لب و، قسمت من یوآنی بین، کابراهیگر مانی که کن آشنای زبهیبو لدرگا گیراینوا، و توی زيرو دج منی شیخ عبد الله دزی لوانی روتمان کا چون که د سنمال یو لویش بيدنګ خمان رزگار کردو چوینه گوندی قاسم لو له دولی قاسم لو لبنت شای دمدم که استه شوینواری خانی لبزرینی لدیاره شو لمالی مصطفی آغا ناو میوان بوین کابرات دیوست روتمان کا بلام پی واضحه نه بیا نی ولغمان لسوفی شیرنوی بکری ګرتو چوینه دزا بونیوरोला عبد القادر کور شیخ عبدالله لگردوان بوینو یوار چوینه رشمالی مالی شیخ لدزا منراني هوا شیخ ابید الله سینوی سید عزیز شمزینی ک افسری کی عراق بو سعید کنی مرانی ناوی کیش ک تازلاو کو خوارزه شیخ ابید الله بو دغلن حاتبو چندین کوونه من پیک وکردو لسر 12 نقطه پیکاتین که هر دوک حزب پیک و هاو قریب معلومات پیک ګورنوا جا چون کلوش ونه که پیک بناری دالن پرو لایک شمزینانو املی ایران بو نامنه پیمانی 30 بریا در هر دوک مان هر کس لای خو بیانه ک بلاو کاتو دوایو شو لد زبرګی لشنو با پی هاتینه نغده و لنغده و باسوار ترامبیل که سینمایی انگلیسیان که دهات حت سابلاغ هاتینه و یما دزبجه نسخه بیانی خوامن لنشتیمان ده چاب کرد. هشتا بلاو نکرد بوا خبری انده ک که حزبی هی پیکات با پی رازی نبوا و چابی مکن. روپرا چاب کرده و که پی کاتنه که من لگوواره که دری. خوش او بو که بندک لپی کاتنه که اگر انگلیس لی عراق بشه بدن با کرد، نا بیا کردی دروی عراق حلاویره، چون که کردستان یک پرچه، با بلین اما بشی کرد به حق دزانینو، با پی توانا یاریده همو کرده دادین، که امش دگل روسان هر او حول دادینو، مکوریان لکردی ترکیو عراق با جا نزانین، حزب هواكا بسروقاتي مع مسترفق حلمي بو لمصلحة نزاني بو كهيش ناوك للروس كرد إيران و تركيا بي بس او ريكوت النامة مجوية تاستاه لزور شعب مني ناوخي و لاوكيدا كراوة بل عم سير لودايا كناوي هجار لهموان دا فريدرا و نسيوانا زبیحیو، مرزا قاسم لیرانو، شیخ عبدالله، سید عزیز لعراقو، قاضی خدر، یان قاضی ملا خالد، جاری واشی قتویانا، قاضی عبدالوهاب. لاین کردی ترکیا و ام پیمانی سیاستنوریان پسند کرد. همیدوام ام قرانی راستیه لروی هیچ قرظه کو نبودیو حالا یک بار لدل پاشی و رویداده. خشیشتن لریدا حتینه کوتای بشی یانز می خن نویک تیبی چشت مجاوری هزارم کرانی